برلین آلمان 8 ژانویه 1993 سرسدای حاضران در سالن حراج رفت رفته فروکش میکرد. سرانجام سکوت کامل بر فضا فرما شد. مجری مراسم پشت تریبون چوبی در صدر مجلس ایستاد. تعداد افراد حاضر در مزایده بیش از حد انتظار بود و همین باعث شد شروع مراسم به تأخیر بیفتد. مدیریت حراج تأکید داشت که تنها خریداران روی سندلی های سالن بنشینند. و خبرنگاران و عکاسان پشت سر آنها و در نیمه عقب سالان قرار بگیرند. مجری از پشت تریبون نگاهی گذرا به جمعیت انداخت. آب دهانش رو داد و آماده صحبت شد. خوش آمد می کنم خدمت همه سروران گرامی. قبل از اینکه مزایده رو شروع کنیم دوست دارم کمی در مورد شیء نفیس و با ارزشی که ما قصد داریم امروز اون رو عرضه کنیم صحبت کنم. به کنار جایگاه و ادامه داد این قطعه شگفتانگیز ساخته آنتونی و استرادیواری و مربوط به دوران طلایی فعالی... فعالیتش بین سالهای 1700 تا 1725 است. همونطور که می‌دونید استرادیواری مهمترین و مشهورترین ویورونساز تاریخ است، و سازهای ساخته ایشون از نظر کیفیت و قدرت صوت، ویژگی خاصی داره و مانند اون هیچ جای دیگه پیدا نمی‌شه. صفحه روی ویولون از چوب سنوبر ساخته شده، قسمت میانی از چوب درخت بیت و صفحه زیرین از چوب درخت گردو است. همه چوب ها و مواد مورد استفاده در ساخت این ساز توسط کارشناسان مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار گرفته. پایه مواد از بوراکس و املاح سودیوم و پتاسیوم است. رنگ نهایی ویولون از روغن جلای بسیار مرغوبی است. که از سفیده تخم و سمق عربی تشکیل شده آزمایشاتی که انجام شده و همچنین تایید مواد مورد استفاده سازنده دلیل خاص بودن این ویولون درجه یک است و جایگاه ممتازی به اون داده این آزمایشات توسط متخصصین شناخته شده ای از موزه برلین، موزه اسمیتسونیان واشنگتن و موزه هنرهای مواصر شیکاگو انجام شده و همگی بر اصل بودن این اثر و صحت زمان ساخت اون تأکید داشتن سروران گرامی من میتونم با اطمینان به شما بگم ای که امروز به نمایش گذاشته شده و همکنون در مقابل شما قرار داره یک اثر نفیس و نایاب هست کلکسیون داران و هنر دوستان باید توجه داشته باشن که این اثر خاص و منحصر به فردی هست که نمونهش وجود نداره و اما در مورد مالکیت این اثر و مدارک مربوط به اون باید عرض کنم گروه حقوقی ما اسناد و مدارک ارائه شده توسط فروشندگان رو به طور دقیق مورد بررسی قرار دادن و از صحت این مدارک اطمینان کامل حاصل شده. با انایت و قانون شفافیت که گالری ما بسیار به اون پایبند هست از همان موقع اعلام زمان مزایده همه این مدارک جهت آگاهی عموم در پایگاه مؤسس قرار داده شده و موجود هست تا هر کسی که قصد شرکت در مزایده رو داره بتونه پیش پیش اعتبار اون رو بررسی کنه. سروران عزیز امیدوارم با این مقدمه شما رو خسته نکرده باشم و حسلتون سر نرفته باشه. فکر کنم لازم بود قبل از شروع مزایده این حرف گفته بشه. نکته آخری که باید اضافه کنم اینه که این اثر نفیس و ها با پیوندی که با نام سازندش داره به خوبی معرف اصالت خودش هست و همونطور که سروران میدونن کلمه استرادیواری امروز در بسیاری از زبانهای اروپایی مترادف با اعتبار شده و بلکه اوج نهایت و اعتبار هست. شمار زیادی از خریداران آثار باستانی از همه جای دنیا برای دستیابی به این ویولن در این مزایده شرکت کردند. در سمت راست من کارمندان شرکت هستند. و تماس تلفنی برقرار کردند با تعدادی از مشتریانی که در اینجا حضور ندارند و به صورت تلفنی در مزایده شرکت خواهند کرد از توکیو نیویورک لس آنجلس ریودژانیرو و سیدنی سرورگرامی حراج رو با مبلغ 100 هزار دلار آمریکا شروع خواهیم کرد مجری صدایش را کمی بلندتر کرد و گفت چه کسی صد هزار دلار میدهصد هزار دلار از آقایی که اون پشت نشسته بعد به کسانی که گوشی تلفن را به گوششان چسبانده بودند نگاه کرد 300 هزار از توکیو نیم میلیون از سیدنی چند لحظه به فردی که در ردیف اول نشسته بود گوش داد آقایی که اینجا مقابل من نشسته ۷ هزار دلار میده بالا رفتن دستها و اشاره سرها و هفت زدنها با کاشناس ادامه داشت تا جایی که قیمت به دو میلیون دلار رسید آن وقت مژری مراسم صحبتش را قطع کرد و دوباره حظا رو مورد خطاب قرار داد. سروران گرامی چند لحظه مزایده رو متوقف قایم کرد. در این فاصله با دوستان و با فروشندگان مشورت میکنم و برمیگردم تا دوباره ادامه بدیم. مرد به همراه دو معاون خود به طرف دفتر گالری که پشت سالن قرار داشت رفتند. در آنجا صاحب ویولون به همراه وکیل خود مزایده را از طریق بلنگوها دنبال میکردند. سر سرکار خانم، مزایده رو متوقف کردم چون مبلغ از اون چیزی که انتظار داشتیم فراتر رفته و همه ی موادلات ما رو به هم زده. خب این خوب نیست؟ البته که این فوقولاده هست. خیلی عالیه اما من از باب امانت شغلی باید قبل از ادامه یک کار موقعیت رو برای شما روشن کنم. به نظر می مرد کمی عصبی شده است، چون وسط زمستان سرد برلین داشت عرق می رخت. همونطور که میدونید، ارزیابی ما در خوشبینانه‌ترین حالت این بود که مزایده نهایتاً روی یک میلیون دلار بیسته. شما آنچه اتفاق افتاده رو دنبال کردید. ما در کمتر از سه دقیقه تقریباً به دو برابر این مبلغ رسیدیم. واضحه که در پیش‌بینی‌هامون پیشبین... اشتباه کردیم و در اینجا من به عنوان صاحب گالری لازمه که با شما مشورت کنم و نظرتون رو در مورد ادامه مزایده یا توقف اون بپرسم. بفرمایید آیا ادامه بدیم یا نه؟ آن خانم و وکیلش همچنان به سخنان کارشناس گوش می‌دادند و او ادامه داد: درخواست ها برای ویولون خیلی بیشتر از اون چیزیه که ما انتظار داشتیم. شما الان دو انتخاب دارید: ادامه مزایده تا زمانی که به بالاترین قیمت برسیم یا پس گرفتن ویولون و توقف مزایده. از گزینه دوم ترجب نکنید. این کار در حرفه ما یک جور ریسک هست. که گایی حتی باعث میشه چیزی که از مزایده به دست میاریم بیشتر هم بشه. وقتی درنگ کرد. گویی امدن میخواست قبل از اینکه حرفش را ادامه دهد، حس کنجکاوی آنها را برنگی زد. الان قیمت جدید ویولون تقریبا ثابت شده و تجربه من میگه بین خریداران هستند کسانی که بالا بردن قیمت را متوقف نمی کنند. اونها بسیار سروتمندند و بعضی تا وقتی به اون چیزی که میخوان دست پیدا نکنن آروم نمیشن. اگر مزایده رو متوقف کنیم، مستقیم با تو تماس میگیرن تا از خودت بخرن. و در این حالت شما در موقعیت قرار میگیرید که میتونید مذاکره کنید و معامله متفاوت و بدور از چشم جهانیان داشته باشید. قبل از اینکه تصمیم بگیرید دوست دارم تکرار کنم که این فقط احتماله و ممکن هست چنین اتفاقی هم نیفته. کتابیاتم به نمایش دوباره ویولون و حراج اون برمیگردید. ما در شغل خودمون آموختیم که در حالت بازگشت دوباره به مزایده آنچه که در حراج اول به دست آوردیم رو نمیتونیم حفظ کنیم. یا حداقل میتونم بگم این چیزیه که معمولا اتفاق میافته. بعد از اینکه سخنانش به پایان رسید، اجازه خواست و با معاونانش از دفتر بیرون رفتند. و صاحب اثر استرادیواری و وکیلش را به حال خود گذاشتن تا مشورت کنند. نظرت چیه وکیل قبل از اینکه پاسخش رو بدهد کمی فکر کرد واقعا چیز عجیبیه شاید بهتر باشه فعلا مزایده رو متوقف کنیم و منتظر بمونیم تا ببینیم پیشنهادهای مستقیم که این مرد دربارش صحبت میکنه چیه به زمان نیاز داشت تا راجع به این پیشنهادهای مطرح شده خوب فکر کند و تصمیم بگیرد میدانست که تصمیمش تاثیر زیادی بر زندگی شریکش میگذارد که زمانی با او مهربان نبود تا روزگار بر مرادش نمیچرخید. بالاخره از وکیلش خواست به مزایده بازگردند و دوباره حراج را از سر بگیرند. چند دقیقه گذشت و مجری مراسم و مجری دوباره به سالن مزایده برگشت و در جایگاه قرار گرفت. سروران از صبوری شما سپاسگزارم. اکنون مزایده را از سر میگیریم. خب، نیم میلیون دلار اضافه شده چه کسی 2.5 میلیون دلار پیشنهاد کرده؟ رقابت این مزایده داغ دوباره شروع شد تا اینکه قیمت به 5 میلیون دلار رسید. کاشناس با خود فکر کرد که دیگر به قیمت نهایی نزدیک شده‌اند. تعداد اشاره‌ها و دست هایی که بالا می‌رفت کم شد. تا به رقابت تا حد زیادی فروکش کرد. و فقط به دو نفر محدود شد. فردی که در ردیف اول نشسته بود و شخصی که نیمه شب در توکیو بیدار بود تا به صورت تلفنی در مزایده ویولون استرادیواری برنده شود. موجی ناداهان متوجه شخصی با لباس مشکی شد که به طرف او می آمد. فرد مشکی پوش بدون لحظه توقف جلو آمد تا به او رسید و ایستاد. موزی از اینکه می دید کسی اینگونه نظم جلسه را به هم زده و مقابل او قرار گرفته و در روند مزایده اختلال ایجاد کرده است ناراحت شد. مرد اشاره کرد که می خواهد با او صحبت کند. با اینکه از کاری که انجام داده بود خوشش نیامد اما جوابش را داد. از جایگاه پایین رفت و به حرف که که در گوش او آهسته میگفت گوش داد. حالت چهرهش تغییر کرد. با ناراحتی به مدارکی که او در دستاش نگاهی انداخت و با تمرکز و دقت زیاد آنها را بررسی کرد. حضار از آنچه در مقابلشان میگذشت متعجب بودند. مرد دوباره و سه باره اوراق را خواند. سپس به جایگاه برگشت و اعلام کرد. سروران مزایده, رو ب... مزایده به دستور دادستان متوقف خواهد شد، این حکم میگه شخصی پیدا شده که ادعا میکنه مالک ویولون هست. گویا در مالکیت این ویولون اختلاف وجود داره.